حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر علاقمنداره چه چقدر بلدی بخندی و چشم دل بباز با هر دل ببندی لشوق که دلم سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردام و پس فردا تشباک درب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام به همگی حالا اولتون چطوره من فرشید منافی اینجا راژیو پس فردای شماره 957 امروز سهشنبه شنبه هشتومه 1394 با شماییم خب خوب خوبین چه خبر کیفا کوکه؟ کوک نیست؟ ای بابا خب کوکش کنین دیگه؟ آز زیاد کوک کردیم فنرش در رفته معلومه بالا من هم هی پشتم هی تعطیل می شدم و زیاد می کردم کوک کیف هم فنرش می پرید امروز هم تحتیل بود و بود تو ایران خلاصه اشغال دیگه خوش به حالتون بگذاریم حالا امروز می خوایم در آخرین روز بررسی وقای مهم جهان در سال 2015 به بزرگترین و ترین مسئله جهان در سال گذشته به پردازیم ای که به قدری اهمیت داره که جنگ و کشت و کشتار و خون و خون ریزی در برابرش در رتبه بعدی اهمیت قرار میگیره و اون هم چیه؟ بحث محیط زیسته چرا که خلاب بالاخره جنگ ها یه روزی تموم میشن، صلح برقرار میشه اما محیط زیست اگه از بین بره یا صدمه ببینه دیگه؟ هیچ وقتا قابل جبران نیست دیگه آقا سوراخ لایه اوزون اگه تمام دنیام دست به دست هم بدن نمیتونن رفع کنن که یخ قطبی اگه یه روزی آب بشن دیگه جایگزینی براشون نیست که امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به بقای زیست محیطی سال 2015 و در این مورد با هم بیشتر صحبت کنیم پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همی اونایی که تا جایی که بتونن از وسایل نقلیه عمومی برای رفت آمدشون استفاده میکنن البته اونایی که با مصرف کمتر های پلاستیکی سعی میکنن به اندازه خودشون از همین یه دونه کره زمینی که برامون مونده محافظت کنن شرام برو بریم الان فارسی جون سلام علیکم آقا حسن فردا تعطیل دیگه ما خوشحالیم الان بازی میکنیم مثل ایکس باکس پلی استیشن فعلا خداحافظ اونونت برام بعد دیروز زنگ زده بودن گفتن فردا تعطیلی یعنی امروز تعطیل بود باری کلا باری ک کل. یعنی هم ایکس باکس داری هم پلی استیشن همون جون خوش به حالت به خدا. زمان ما آقا یه دونه آتاری بود یه دونه یک خاندان آدم یعنی یه دست بازی میکردی باید میرفتی تایی سفت مثلا تا 65 نفر دیگه بیان بعدش هم دست هر رو تا فشار میدادید زیرتی از بعد می, می, می دسته هم خریدید ببین؟ برد خوش بگذارد خانم آقای اون دختر خانم آقا پسرا چند روز پیش سبتنام کاندیدا ها برای انتخابات مجلسم تموم شد و اینجوری که آمار میگه دوازده هزار نفر رفتن ثبت نام کردن پیه این انتخابات و حسابی هم باعث اصاب خرابی مقامات نظام شد و حاجاغا جنتی ناراحت شدن و امه جمعه گله کردن و خلاصه مثل همه چیزهای این نظام این قسمتش هم به جک آمیخته شد مثلا الان اینجوری که این آقای معاون دادستان میگن ببینید چیا رفتن ثبت نام کردن این بند خدایی که دارای دوازه و سابقه محکومیت قطعی داره چگونه خودش قانه کرده آمده ثبت نام کرده به لحاظ شرایط ثبت نام شرایط داشته تکریفیت جایی مشخصه تکریفیت نظرات مشخصه اما وقت گرفتن ثبت نام کردن با چه هدفی؟ اینا می ثبت نام میکنه این محل تعمله بله طرف دوازده بار محکوم شده رفته ثبت نام کرد خب رفت دوازده بار محکوم شده باشه حتما رفته مجازاتش هم کشیده دیگه خودتون میگید از نظر قانونی هم میتونه ثبت نام کنه قانونی مهم بوده که خب قانونی مهم بوده ثبت نام کرد گله و شکایتتون چیه الان آقا تو همین این نظام تو همین مملکت ما اقا سعید مرتضوی رو داریم با پرونده قتل چند نفر تو کریزک و پرونده بخور بخور میلیاردی تو سازمان تامین اجتماعی راست راست داره آزاد می که هیچ تازه شق هم بکشه از کشور بازخش خارج میشه ازذا از هم تکون نمیخوره. بعدم خب این آقاینو که تو شورای نگهبان و هیت های نظارت و اجرای انتخابات هستن مگه سوای کار میکنین شما و یه حقوق این چنینی و آن چ و اینا نمیگیرن اینا خب وظیفشون رو انجام بدندهگه این هم غغر دیگه چیه؟ آقا همین دیروز پری, پری روزا بود ایلام شده بود ایرانی ها روزی دو ساعت و پنجه و دو دقیقه بیشتر کار مفید نمیکنن کنن آزارن این عزیزان یک دقیقه هم بیشتر از اون دو ساعت و پنجه و دو دقیقه نمیخوان خوان کار کنن چی بگم باید می دانی مسئله من الان چیه چی؟ تو بودی بقید. اون لباس نقره ای مشکتی رو میپشیددی که کمور دامنش منش تر با کفش های نقره ای برای مهمونی شب سال نو یا اینکه اون لباس مشکی کوتاه رو میپشدی با کفش مشکی ها یعنی این مشکل من خیلی بقرنده خوابم نمیبره آخه چیکار کنیم چی بگم بگمخب من بالا من به من باشه اون کوتاهر شما بپوشی یا مشکی کوتاهر ب تو آره اون کفش نقره یا نمیاد به شما فکر کنم آقا اصلا همیشه لباسه کوتاه به خانمه بیشتر میاد دیگه نمیدونم آقا باز خودت میدونه اصلا میخوای اصلا بلنده به بوش به من چه اصلا؟ ای عجبا سوال های میکنم اما دوستان دیگه هممون در مورد فیلم محمد رسول اللهی که آقای مجید مجیدی با بوجه نجومی ساختن کم و پیش آشنا هستیم و شنیدیم و کامران هم بارها راجبش حرف زده خب این فیلم نه تنها در خارج از ایران نظر منتقدین رو جلب نکرد و موفق نشد افتخاری رو کسب کنه که در داخل ایران هم خب منتقدین زیادی داشت که این مساله در نهایت باعث شد صدای آقای خود آقای مجید مجیدی هم در بیاد. صفحه عظیمی کشیدن علیه این فیلم که در با مقابل این فیلم بیستن که عجیب بری رنی واقعا یعنی تمام مسیرای این فیلم رو در دنیا بستن حالا اونها جای خود داره ولی اینکه مثلا در داخل کشور خودمون از همه گروه ها چه های دگراندیش و چپ و غیر و راست و همه جوره من نمیدونم واقعا چیست این نگاه چه جوریه بله خب به هر حال وقتی فیلم خارج از ایران موفقیتی نداشته داخل ایران هم به قول خودتون همه گروه ها از چپ و راست و اینوری اونوری بهش نقد داشتن مورد توجهشون قرار نگرفته خب لابد چه میدونم کار قابل انتقاد و مثلا ضعیفی بوده یا حداقل ضعیف از کار قبلیتون بوده دیگه ماشاءالله هم که مسئولین برای اکران فیلم شما کم نذاشتن عملا دیگه بیشتر سینماهای ایران این فیلمو همینجوری پخش میکردن حالا اینکه چندین میلیارد هزینه ساخته این فیلم شده و حاکمیتا هم فیلم رو گذشته روسرش حلوا حلوا کرده به این معنی نیست که پس فیلم خوبی مثلا ساختی حتما شما این که نظر منتقدین رو جذب نکردم خب حتما چه می‌دونم یه چیزی بوده دیگه که شما اینجوری داری مطرح میکن به حال ان فیلم بعدی بتونین آی مجیدی یه کار بهتری بسازین علاوه بر جا شدن توی دل حکومت و نظام و اینا تو دل مخاطبین جدی سینما و منتقدین سینما چه توی ایران چه خارج از ایران جا پیدا کنید چرا که نه موسیقی دوری کن از همه حتی تمامتم گاهی برام کمه هر جا بری میگم دل و شدم تا با خودم بری برگردی با خودم شاید حبست کنی حتی بری به ما رویای دورتم از من فقط خواه تا وقتی با منی عشق تو کم نکن هر کاری میکنی جز با خودم نکن تو وقتی با منی نفس می در این برنامه از پاس پسورده میخواییم بریم سراغ محیط زیست در سالی که گذشت همه ی تلاش ها برای نجات زمین سوخته. بیانیه شماره شماره 957 بدانید و آگاه باشید که در سال 2015 نیز همگی تمام تلاش خودمان را کردیم تا زمین را بیشتر از اینکه هست گرم کنیم، هوا را بیشتر از آنکه بود صرف آورتر کنیم و همه حیوانات و گیاهان را هم یک جوری مورد اذیت و آزار و فراری دهیم که یخ‌های قطبی هم از دستمان به حالت ذوب شده زودرست زودرس مبتلا شوند اما از یادآوری همه اینها چه سود که همه ما نهایتاً در خشم طبیعت گیر افتادگانیم امزاو از برگزاری این همه اجلاس و پنگره و مجمع بیحاصل برای نجات دادن محیط زیست به تنگ آمده های رادیو پس فکرش چطوری سال 2015 برای بقیه ای که برای دنیا داشت ولی برای من سال موفقیت آمیزی بود خودخواه نیستم برای بقیه که بد بوده براشون ناراحتم ولی واسه خودم خوشحالم دیگه چیکارش کنم بله خیلی هم خوبه خوشحالیم که شما خوشحالی ان سال 2016 برای همه سال خوبی باشی که شما کمتر عذاب وجدان داشته چی که مثلا فکر می‌کنین فقط خودت خوش خیلی ممنون از تماستون از فردا به تدریج دوباره بارندگی ها شروع میشه ولی نه خب اونجایی که واقعاً به این بارندگی این روزا نیاز دارن یعنی روز چهارشنبه ما نیمه جنوبی کشور و کلی رگبار و رعد و برق و بارون خواهیم داشت تو نیمه جنوبی کشور که تا پنجشنبه این های ادامه پیدا میکنه و توی شهرهای مثل مشهد و تبریز و تهران و اصفهان که این شهرها خب زیر آلودگی واقعاً دارن دفن میشن همچنان قرار مردم با حسرت به آسمون نگاه کنن امیدواریم همین روزا بالاخره هوای این شهرام صاف بشه و یه بارونی و برفی چیزی بیاد مردمانش بتونن یه نفسی بکشن اطلاع تلو یه مهم شرکت نظارت بر کیفیت هوا یا همان شرکت کنترل کیفیت هوای سابق قابل توجه کلیه شهروندان محترم از آنجا که در این روزها هر نفسی که فرو می مخل حیات است و چون بر آگد مکدر ذات این شرکت توجه مردم عزیز را به این نکات و موارد جلب می نموید. با توجه به افزایش شاخص های آلودگی هوا توصیه می شود که این روزها حدت مقدور در خانه بمانید و فقط در مواقع ضروری مانند آتش سوزی در منزل زلزله بالای هشت ریشتر و نیز مراجعه به زایشگاه برای زایمان از منزل خارج شوید حدت مقدور سعی کنید تنفس خود را در منزل کند کرده و در تنفس تا جایی که برایتان ممکن است صرف جویی کنید انجام مدیتیشن در جهت کاهش زربان قلب و دراز کشیدن در وان پر از آب یخ و سرد کردن اعضای داخلی بدن و فرو رفتن به اغمای مصنوعی در این روزها توصیه می شود. در صورتی که صحوان نفس عمیقی کشیدید بلافاصله فاصله یک لیتر شیر نوشیده و در اولین فرصت برای شستشوی ریه به پزشک مراجعه نمایید. شرکت نظارت بر بی هوا کنترل کیفیت هوای سابق امیدوار است شهروندان گرامی با به این توصیه ها شانس زندگی خود را اندکی افزایش داده و ضمن عمل به این توصیه ها از گناهان خود توبه کرده و از درگاه احدیت بخواهند که باد و باران را بر ما نازل بفرمایند پیش از همه شهروندان عزیز حلالیت طلبیده و آمرزش روح همه را از درگاه حق خواست داریم. شرکت نظارت بر بیکیفیتی هوا من قرار تغییر بدم درم زندگی کسی دیگه رو تغییر نده اینه که امروز اولین جلسه تمرین رانندگیمه ببینیم خدا چی می‌خواد دیگه خدافظ بله ما امیدواریم موفق باشی زندگی دیگران رو تو این روزهای پایانی 2015 شما تغییر ندی با این تغییر بزرگی قرار تو زندگیت انجام بدی اینه که دیگه خیلی احتیاط کنین هنوز پارک دوبل جزو شرایط گرفتن گواهی هست یا هست شده چون تو خارجه پارکت دوبل اصلا نیست جزو این شرایط زمان ما فقط پارک دوبل رو میزدی دیگه قبول بودی دیگه یعنی کابوس شبهای بیشتر متقاضیان و نام پارک دوبل بود یادش به امیدوارم موفق بشین شما از شما پرسیدیم که این هفته مهمترین اتفاقی که توی سال 2015 برای خود شما افتاده چی بوده یا توی سال گذشته میلادی چه اتفاقی بیشتر زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده و کلند سال 2015 چجوری براتون گذشته توی اینستاگرام الکترون گفته به سختی و در دربدری در حد لالیگاه چرا در بداری حتی تو دسته تو حد لیگ دسته دوی باشگاه ایران هم سرق دارد. چه برسه به لالیگا نگرانم واقعا برای شما بی برا, برا, برا اسمشون برایان برا نه برینز فیور نوشته افتضاح فرچی جون از اول سال تا الان دارم تاوان شریکمو امیدم که مال منو برد ولی خدا رو شکر به دیام تمومه دیگه خب خدا رو شکر اون مطمئن باش تاوانشون میده ها اینجوری نیست یعنی هرچی ازت برده خرجه میگن خرج دب و درمونش میشه اینجوریه بله پختن نومبربری و کلوچه فومن قابل توجه آقا پرشید توی خونه در دیار غربت از اتفاقات بسیار مهم 2015 بود. بابا. معیم هستم با بیجامه راه راهرا از پنسیلوانیا. به به، اون چه ربط اینم از پنسیلوانیا با بیجامه راه را خیلی ات... خیلی ربطی نداره ولی خیلی ممنونم احسن به شما واقعا نشون دادین که یک ایرانی چه قابلیتایی داره. بنده به نوبه خودم این موفقیت عظمار و و خدمت شما و کلیه اهالیه منزلتون تبریک عرض می‌کنم. به مام یاد بدین تو رو خدا. بربری و کلوچ و رو به ما هم یاد بدین هرچن یاد نمیگیریم ولی حالا شما تلاشتون رو بکنیم تو فیسبوک زامو نوشته برای ما سال بدی بود جنگ با داعش تحریم مالکی علیه کردستان شهید شدن هزاران نفر از زن و مرد و کودکان. ای بابا. امیدواریم سال بعد سال بعدی سال بهتری برای همه همون باشه بعد مارشال توی فیسبوک نوشته بوده یعنی آی نس بود یعنی از شب تحویل سال دقیقا با دعوی شروع کردم تا آخرش که هرچی جلوتر رفت جلو رفتم دردسر بیشتر می شد بعدش هم دعایش و این بازی های سیاسی و اقتصادی که فلجمون, فلجمون کرده اینجا خدا کنه بیفتیم رو ریل خوششانسی و اینا تموم شه. امیدواریم که اینطوری بش... این باشه. خلاصه این بدشانسی ها امیدواریم یه جایی وایس و متوقف شه دیگه اون وسط ها سال 2016 سال خوبی باشه شما. پس فردا رادیو ایمیل ماست دو و دو صف چهارصد بیست هفتصد سیو ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساند اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید و همینطور اپلیکیشن رادیو پس را هایی که ایو اس دارن موبایل یا ایپاد یعنی آیفون یا ایپاد اگر دارید میتونید دانلود بکنید و صدای ما رو بشنوید صدای خودتون رو به گوش ما برسونید. و در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید و تلفن های ما دوسف 420, 22, 11, 24, و 163 اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن اما بریم سراغ محیط زیست در سالی که گذشت میگم یادتونه یه زمانی زمستون که میشد دیگه لامستب تا مغز استخون آدم منجمد میشود تابستونم که میشد گرما آدم ها به جلز ولز وامی داشت پایزا و بحارا هم که یه چیزی بودن همیشه وسط این دوتا دیگه الان قدرتی خدا همه چی جا, جا شده مثلا توی همین مملکت خودمون توی پاییز اندازه سه تا زمسون برف و بارون و بسهیل و ولان اومد. سرماام که دیگه هر کاری از دستش بر اومد کرد. حالا اصلا بعید نیست یه و وسط بهمن ما هوا همچین بهاری بشه، همچین بهاری بشه که علاقمندان به بله، به نظام مقدس باورشون بشه که راستی بوی گل سوسن و یاسمن میاد. همین الان توی اروپایی که اصلا به طور سنتی یعنی باید در این ایام زیر برف دفن شده باشه ملت چوب اسکی به دست و اسنوبورد به پا در حال برف بازی و تلکابین سواری و اینا باشن و برن و بالا و برن و بیان پایین ماشاءالله هزار ماشاءالله هوا واسه خودش بهاریه رسمان یعنی یه همچین هوایی واسه این اروپایی یه جورای فوشه چون برای خیلی از اینا اسکی یه چیزی تو مایه های همون قایم موشک و گرگم به هوای ماست یعنی از بچگی خب اینو باش بزرگ شدن دیگه حالا از دانشمندام اگه بپرسید که بابا این همه بلا برای چی سر آب و هوا آمده اصلا چرا دیگه هیچی جای خودش نیست؟ میگن چه میدونم آغاز روند زوب شدن یخ‌های قطبی و تولید بیش از حد آلاینده های جوی در سطح کره زمین از از اینجور چیزا باعث این پدیده شده؟ و تو سال 2015 این روند بدتر شده که بهتر نشده ما ماخرش نفهمیدیم که چی شده که اینجوری شده دست گلتونم درد نکن با ناسلامتی دانشمند اینا شما یکم دلداری با آدم بده و خب جای دوری نمیره که والا با این دانشاشون بریم سراغ پریبرز غریب پریبرز غریب سلام سلام سلام به هنگی فرشی جان پریبرز مهمترین اتفاق ورزشی سال 2015 از نظر توب چی بوده قبل از اینکه اینو بگم توی فرمایش جناب رو تکمیل کنم بر تو الان مسابقات جام جانب جهانی اسکی است آلمان دارن برس می سازن یا درم در در وارد می برف همینش از جای های دیگه, دیگه می میچسبونن مثلا توی پیست که برف آره. باشه اولین بار دوره ور این پیست مثلا پرش اسکی رو نشون میداد همش سبز و گل و بلبل بود به جای برف هر سال برفه امسال اصلا خبری نبود بله بریم سره سال شما مهمترین اتفاق ورزشی سال 2015 فرشید همین خبر فساد و رشوه و پولشویی پولشویی در فیفا بود که مثل یه بمب تو محافل خبری سراسر و پاش کرد و همین 72 هفته پیشم بود حدود دو هفته پیش بود که سپلاته رئیس فیفا و میشل پلاتینی رئیس یوفا از یه کمیته اخلاق فیفا 8 سال محروم شدن بله واقعا یه خبر شوک آور بود تو جهان ورزش ولی درسته درست فرشید خیلی مهم بودم فکر می کنم که این ماجره قصتش خیلی دراستره و به سال 2016 بکشه فرشت از زهران نعمتی با می تیرنداز ایران بگم که با وجود داشتن معلولیت سرصدای جهانی بفای کرده در سال 2015 هم پارا المپیک گرفت هم المپیک به عنوان برطرین ورزشکار معلول جهان در ماه نوامبر 2015 انتخاب شد حریر ازا فقانیه پله داور فوتبال ایرانم. ماه پیش بازی فینال جام باشگاه‌های جهان رو در سال 2015 قضاوت کرد. یه مصاحبه کرده ایشون آقای فقانی با سیما که در مورد مشکل گرفتن مبلغ داوریش اینجوری گفته. ما هر داوری در طول یه فصل با 10 میلیون تومان درآمد داشته باشه، اینجا ما و 578 میلیون پرداخت پرداخونه که ما به مشکلات سیاسی که ما داریم هنوز پول جام جهانی اونم نگرفتیم که چند شاید خیلی وقت ازش می‌گذره. بله خب ایشالا یکی از نتایج حسابر جام اینو که ایشون هم به پولشون برسن دیگه خب بله. فریم ورز پرونده ورزش هفته رو هم ببند و بریم تا شنبه دیگه یه خبر جالب امروز ورزش سه داده فرشید نوشته یه آمریکایی قراره تو حل مشکل علی رزا جهان بخش واسه بازی کردن برای تیم ملی امید ایران کمک کنه چطوری کمک کنه؟ جهان تو تیم آلکمار هولند توب میزنه و محسوبان این تیم هم اجازه ندادن بهش که بیاد در تیم ایران تو مسابقات انتخابی المپیک بازی کنه اما آقای ایستوارت آمریکایی یکی از مدیران این تیم دوست محمد خاشبور سرمربی تیم ایران در اومده اتفاقا و خاشبور قراره برای حل این مشکل بره بلند دست به دامن این امریکاییه بشید حجب خب فقط شانس آوردیم تیم زیر نظر آجاقا مایلی کوهنه و اگر نیش باید نبود کفن پوشا به خاطر نفوز آمریکا تو تیم ملی امید بریزن تو خیابون همین روزا <تصفح> <تصفح> ممنونم از زد فری غریب باید خدافزی میکنیم تا شنبه. تا شنبه خدا نگهدان What have we done to the world Look what we've done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 we've enough سلام know this this riding شب شب رو زمن تحیل از تصمیم کشور کویت برای اضام نیروی زمینی برای سرکوب حسی یمن با مروری بر سرخط مهمترین خبر خوبی امروز و امشب آغاز می اعلامی اعلام مجدد وضعیت قرمز برای آب و هوای تهران در روز سهشنبه و توصیه کارشراسان به مسئولین که با این زمستون کلن وضعیت قرمز اعلام کنید که همه همه راحت چه بره پیکارش اظهار نظر یکی از مقامات نفتی کشور با این مضمون که درآمد کنونی نفت کفاف پرداخت یارانه را نمی و توصیه ناظران که خوب اعلام کنید از این به بعد مردم مای 45500 تومان به دولت یارانه پرداخت کنند و انتشار پیش‌بینی‌های مسئولین کشور و متخصصین علم اقتصاد مبنی بر ثابت ماندن قیمت دلار در دوران پسابتحریم روی نرخ 3600 تومان. و برپاوی مراسم جشن و پایکوبی بین گروه های مردمی به خاطر این موفقیت بزرگ مسئولین مهمترین عناوین خبری ساوت گذشته را شامل می اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلی بوی بل. با سلام، رئیس کارگروه کاهش حوادث اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش 8 تا 10 برابری معتادان خیابانی در تهران خبر داده است. وی در گفتگو با خبرنگاری کار ایران، ایلنا، تعداد معتادان خیابانی در سطح کشور را در سال 1385 15000 نفر اعلام کرد و گفت که در حال حاضر فقط تعداد معتادان خیابانی پایتخت پانزده هزار نفر می باشد در همین رابطه یکی از کارشناسان ضد خیابانی کشور به خبرنگار ما گفت یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معتادان خیابانی این است که آنها را در کوچه ها، اوتوبان ها، زیرگذر ها و باقی موابع به جز خیابانها را بدهیم تا از میزان آنها در ها کاسته و جلوی افزایش آمار معتادانی تادان خیابانی گرفته شود پایان مرشوه اخبار به همان طور که احتمالاً در خبرها ای اخیراً 600 تن گوشت مرغ به دلیل فاسد شدن در کشور معدوم شده است همین دلیل همکار گرامی هم خبرنگار واید غیرمرکزی خبر به سطح شهر رفته تا از صحت و سوق این مسئله گزارشی تحیید کنند همکار محترم بله صدای بله همکار بله بنده رو دارید همکار بله گرامی بنده صدای شما رو دارم و از محل معدوم سازی های فاسد با شما حرف بیزارم همکار گرامی خب به همکار گرامی بله چی شدین ها رو معدوم کردن یا نه بلاخت مدیر امله شرکت پشتیبانی، امور دام مصاحبه کردن و ایشون کلا این خبرو تکذیب کردن همکار یعنی چی خب 600 تن مرغ بوده چجوری میشه کسی علکی ادعا کنه این همه مرغو معجوم کردنه والا همکار ایشون گفتن این شایعه رو به خاطر انتخابات درست کردن همکار ای بابا الان هر چی میشه میندازن گردن انتخابات خب همکارام آیا مدوکی هم ایشون داشتن یا نه ادرکم اونجوری که نه ولی ایشون یه پرس پلو مرغ گفتن برای بنده آوردن که بخورمش به عنوان سند و آزمایش اوه اوه. ای خب بچی چی شد همکاره گرامی بنده همکاره گرامی بنده خوردم من ازش نبود ولی الان گلاب بیروتون تو صف دست چیه آقا بودی ای, ای بابا چرا حالا صفحه دستشویی همکاری گرم؟ آه همین کار کارکنا اینجا هم همین مرغه رو خوردن دیگه همکاری کاری عزیز. آقا بود دیگه هیچی کاری گریم نبااد داغ بزن آه. آه. عرق نام خوبه عرق نعنامه همکاری گرمی کاری گرم. دیگه کار از این حرفا گذشته به بگمونم حالا حالا خالی من برم این پسو پشتایجا اینو پیدا کنم آقا دیگه احمد تحمل کن تو ای بابا این با تشکر از شما شب دیگه برنامه دیگر و خبرنگار واید غیرمرکزی خبری دیگر خدا نگهدار هر جمیره و آبه رویزی را این پسر کارت قد بخوره و شکمه دامه شرف شیان میخواستم بگم روز جشن اصلی برانده ایران روز پنجاجمی است نه 25 دسامبر و اینکه نه ای بو بو. نزدیک بهار لطفاً بازگو بشه که دوستانم بدونن آقا خیلی متشکرم ولی آقا چقدر روایت های مختلف و متضاد هست یعنی داستانی شده ما اون دفعه تبریک گفتیم یه نفر گفتش که نه توی ایران بیشتر آرامنه و مسییان ارتدوکس هستن و الان جشنه گیرن. جشن نمیگیرن فروردین جشن میگیرن حالا من من توی اینترنت هم باز من رفتم دیدم زده بود شو شیش جانویه حالا ایشون میگن پنج جانویه اصلا آقا ما کلا هر جشنی که آرامنه عزیز در هر موقعی از سال دارن رو ما همی الان خدمتشون خبریم میگیم به به به به مبارک باشه. از اتفاقات خیلی مهم در سال 2015 توافق بیش از 150 کشور جهان در نشست پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بود البته از این 150 کشور تقریبا 130 تاشون نخودی بودن یعنی توافق کردن و نکردنشون زیاد مهم نبود چون اولا بیشتر از 80 درصد گازهای گلخانه‌ای دنیا رو فقط 20 تا کشور تولید میکنن که البته خب ایران عزیز ما هم با افتخار در این لیست بیستایی در رتبه یازدهم و بالاتر از حدود 140 تا کشور دیگه قرار داره باز بریم بگین ایران نقش رنگی در تحولات جهانی داره بیا دیدین به هر شکل این توافق از این جهت خیلی مهم بود که اگه زبون هم لال صورت نمی گرفت و میزان تولید دیوکسید کربون با همین این شدت ادامه پیدا می کرد دمای کوری زمین تا سال دو یعنی حدوداً 85 سال دیگه میگن به اندازی 4 یا 5 درجه گرمتر میشد حالا فکر نکنین 4-5 درجه که این حرفا رو نداره با ایناها داریم در مورد میانگین دمای کره زمین کل کره زمین حرف میزنیم که هر یک درجه افزایش دما میتونه یک فاجعه زیسمویتی به بار بیاره البته قبلن هم بگم توی سال 2009 کشورهای جهان توی کوپنهاک پایتخت که بار دیگه یک چنین اجلاسی رو شبیه به این برگزار کرده بودن که اون بار هم توافقی حاصل البته نشده بود کشورهای مثل چین که بزرگترین تولید کننده همه چیز من جمله دی اکسید کربن توی دنیاست برای اینکه تو مسیر رشد و توسعه اقتصادیش اختلال ایجاد نشه یه وقت زیر بار تعهدات بین برای کاهش گازهای گلخانه‌ای نرفته بود اما این دفعه ظاهراً کشورها از خر شیطان اومدن پایین و قراره که این فیتیله یه فسیلی رو بکشن پایین و اگه اگه به تعهداتشون عمل کنن میشه امیدوار بود که بچه ها و دیگه نبه نتیجه های ما بتونن توی دنیای زندگی کنن که توش پنگوان و خرس قطبی هم باز وجود داره اون موقع دیگه توکل به خدا بریم ببینیم چی میشه دیگه دلنگرانی ما از آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهده پیروزی باشد سلام فرشید جان از اتفاقات عجیبی که تو سال 2015 افتاد اینه که شبکه آی فیلم شروع به پخش سریال قطار عبدی کرد و عجیب ترش اینه که توی تیتراژ اسم کامران ملکمتی دوجمن هم دیده میشه و تو خود کار هم بله. اسمی از رامین پرچمی و دیگر عزیزانی که جدیدن ممنوع شدند برده میشه بله خب اینا هم دستشون در رفته دیگه حالا شما هم کاش صداتشو در آوردی احتمالاً فردا چه میدونم با لاک اسم رامین پرچمی و کامران عزیزو لایک میگیرن گیرن. مدیر شبکه‌م برکنار نشه، یک دو تا از معاونینش برکنار میشن کامران عزیز فکر کنم پشت خط باشی. سلام پرش جان. سلام چک کردم. خوبی کامران؟ مرسی متشکرم که این دوستمونم خبر داد که اسممونم امروز لایک نگرفت، <تص> نمی آره ظاهراً دیگه گفتم این خبر رو رو داد. حالا ما نمیدونم دیگه برن جلوشو بگیرن یا نه. بریم که پرونده اتفاقات هنری سال 2015 ببندیم دیگه کامران. آره بریم ببردم هفته نامه ورایتی فشن 10 فیلمی رو که در سال 2015 بیشترین دانلود غیرقانونی رو تو آمریکا داشته اعلام کرد اینجوری من به دانلود غیرقانونی تو کشور خودمون خیلی امیدوار شدم. کدوم فیلم‌ها بودن؟ چقدر دانلود شدن؟ فقط ستای اول میگم ده تا فیلمن بین ستاره, ستاره یا اینترستر انترا... بیشتر از 46 میلیون بار دانلود شده فیوریس یا یا خشمگین هفت بیشتر از 44 میلیون بار اوونجرز یا انتقام جویان هم بیشتر از 41 میلیون بار اینا دانلود شده نه من امیدوار شدم به خودمون واقعا من فکر ما خیلی بیشتر از این حرفا از سینما ایران چه خبر را از فردا پرچه یه فیلم جدید دیگه اکران میشه تو ایران به اسم بوفالو ساخته کابه سجادی حسینی بخشی از صدای فیلمو رو بشنبیم بعد من بیشتر توضیح میدم بشنبیم خالی ما خالی نه هست یا نه بابا خالیه چی امروز میگن نیست شبتا آسطورا خبر ورگش میاد فردا داریم از خروازی در میاری باره تو اون رو بندازی من میندازم اطمائی خود مراقب باش. کوچیک همه میخوان از کار سر در بیارم جااد کجاست ؟ پشت پاال سافر خونه معرم ونه یکی شروع موتور بله بخش از صدای فیلم بوفالو ساخته کاف سرجدی حسینی روشنیدیم بازیگرا کیا هستند کام را بازیگرای اصل فیلم پرویز پو و سیننی سویل گلستانی پانتا پنارییا و هومن سیددی هستند که پرویز فر سینی یا پرستیی؟ تو... پاریز پرسویی به وشید. ایسته و فکر میکنم پول بسته نیسته وای. کیش وارد رفتم. با... مل خودم لاتش میگیرم. پاریز <تصفح> <تصفح> <تصفح> <پربیز> پرسویی سوئیل غولستانی <تصفح> پناهی ها هومان سعیدی. و حومن سیدی هستن بازیگر اصلی سه تا نمایش هم بیشتر به فیلم اختصاص داده نشده اینم بگم تا یادم نرفته که بازار کنسرت ها میروزه خیلی داغه برای مثال کنسرت گروه آذری آیهان جمعه 11 دی تو سالن میلاد برگزار میشه گروه تونسته مجوز رقص خودمون یا حرکات موزونام بگیره برای اجراشون حالا بعد ببینیم چی یعنی برای خودشون گرفته یا برای چیا؟ چه این این برای خودشون بزر... گرفته. حالا دیگه حالا تماشاگری هم بکنم دیگه گردن ما نیست، گردن گروه هم نیست. <تصفيق> <تصفيق> ممنونم ازت کامران عزیز باد خدافظی میکنیم تا هفته آینده شنبه و میریم بخشی از کار یکی از کارهای این گروه آیهان به اسم بری باخ رو میشنیم. تا شنبه خدا میگردم. من سنا آی با؟ من سن Listen to me. دیگه ما داریم بخستن میشیم پسر عزیزم ما بیاییم روی دوش شما که شما راحت تر راه بریم یادی شما بیاید روی دوش من که من راحت تر راه برم بابا ده قدم اومدیم از آسانسوتا اینجا دیگه چی میگی؟ ده قدم مگه کمه ما این انرژی رو احتیاج داریم این این اون که دیگه ندیده بودیمش اینجا قبل نمیدونم حاجی کی میتونه باشه این وقتشم سلام علیکم خوب هستین شما خوش شما سلاما موشک از سبب بسو ببینم تو که هست اینجا بدون اجازه ما تردد میکنه والا جغا سعیدم خب منم هم نسبی هستم ایشون هم دادی اندی هستن ولی ندیدیم ایم برای تو شما من تازه اومدم رادیو پس فرد و چی گفت این حرفه بعدی زد پسرم و ناقصش کنم نه نه دادی ببین ببینم اگه اینجا بیمارستانه که شما اینترنی آخه چیزه ببینید من آه کارآموزم آموزم پسرم این آه همونه آه که میگفته تازه مخواد بیایه آره دادی فکر کنم از همونه هست ایتالیایی دادی از ایتالیا بره چرا زودتر نگفتی ما ایتالیایی ای صحبت بکنیم من مخلصه شما از نمازه آقا فارسی حرف میزنم من مخلص نمیخوایم. خب با پسرم شماره دو رو اجرا می‌کنه. شی دادی شماره دو چیه؟ آها آه فهمیدم. بله ددی دارمت بله بله. بگو ببینم انترم آ اینو حاج آقا ما شما رو انترم صدا میکنم به داره داره حاج آقا هر چی شما خودت سلام میگی بهتر شده میگم شما میدانی شرایط <تصفح> کار کردن اینجا چیه اون هم به عنوان انترم آره بالاخره اینج یه سری مقرراتی داره واسه خودش دیگه علکی نیست که بابا بالاخره آره حاج آقا بچا یه چیزایی برام گفتن دارم را میفتم یواش یواش آه مصیبت ها برف و گوش نده ها گمراهت میکنن بابا اونها منم گذشته اومده بودم کلی ساره کردم گذشته بودن سعید جون ببین واقعا ای بابا یعنی چی؟ ها آره. آن نباش انتر، ما هستم اینجا هواست آره آره هست شما. یه قوانین و مقررات اینجا برای تعرف. بگو چی باید؟ اول ممنونم. بله. اولا که حمله پول نقد و این چیزها تو این سختمان ممنوع. اخ اخ ای بابا، بله. بله. نمیدونستی سعید نه خدا. اول من با... یه کمی پول هم را کنم یعنی. هیچ خصص نخور عزیزم. اما شبا ده من برات نگام میدارم دیگه بده، بده. شما یعنی اشکال نداره دیگه ببین ببین شما یا نشقال نداره آقا پول هم بده دیگه به ببین ما دخلا اباemon یک جیب مخفی داریم گویا وقتو نصفی رو هم توش جا میدند که پول شما که دیگه سحله آره بابا خیالت راحت حاجی امانت داریش عالیه ها سعید ببین عالی پس آقا این پاکت رو ببین بزن بده بده. بس من نگردارم والا بله بله بده ببینم وا فضل ناخسارم به نظر انترم فسره کلی بوخملاتی میاد آره دردی آره. وزارش تو جیبت یه وقت فرشیدی کسی نیاد ببینه ها فرشیدن این یعنی آواحت میشه اون که اگه ببینه آره. همه بولت رو میگیره با اون ملعون جلال و سامی و انها میرن همه شو میخورن آره بابا به موام هم نمیزن تازه یک مسئله دیگره هم که هست اینه که بلاخره تو جوانه در این شهر هم احتمالا <تصفيق> کسی رو نمیشناسی بلاخره تنهایی بینسان فشار میاره وای وای دادی با... دادی ولش کن سعید اونو نگو حالا ببین دادی بعدا اینا رو صحبت میکنیم دیگه بیا بریم چی بی... شده اخه هیچی روحانیت مسئوله پسف با... نمی تونه جوان خراب امان خدا رها بکنه کرده. ای خدا من خجالت میشه شما دادی من میرم اونور من میرفتم چی بی... شده بگی من دلم هزار راه رفت به خدا این چه خجالت نداره که پس گوش ای... کن ببین چه خداوند توفیقی به بندانش فرموده که در این شهر مورد اعتماد مؤمنات زیاد به سلامتی بله سلامت باشه اینه که هر وقت نیاز داشتی این کارت بنده را بگیر یک میس بنداز از سیغه یک ربعه زن عفیفه مؤمنه دارم تا سیغه 99 روزه بذرت من این آلبومم رازی را وایم در میورد. نه ن... اولدادی دادی دادی حالا با ساتر رو آلبومو در نیاز زشت زشتانه یکی می ببینید حاج ممنونم واقعا ولی من حقیقتش زیاد اهل این بل بل بلش... مسائل نیستم. والا کلا مسائل نیستی یعنی چه روحانیت در تمامی این مسائل میتونه راه باشه دیگر. دادی ببین آلبومو اح... بذ سرین جوش میگه خب اهلش نیستی که بابا ولش کن. ببین ناترس چاپ را با شما دانشچویی حساب میکنید. نه اصلا این نیست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 سلام چی شدی چرا اینو رفتنی چی بود مورد؟ خوب چی بود می گفت آ نمیدونم وال لاج گفت مبر دارن اون علکی میگه با مبرش کجا بود چی میگفتن گفتن حالا راستش داشت در مورد سیقه با این چیزا صحبت میکرد اگه احساس تنهایی کردم داده بیدا ببخشید تو رو ف عیدادره آ خ این آبابروی ما رو میبرن با این کارشون دیگه نه تاری نیست بعدا ببخشید فری جا من نمیدونست نم تو این ساختمون پول بیاری چی گفته یعنی چی کی گفته؟ اجاققا گفت ممنوعما رو می پیشم بود دادم بهشون که تو جیبم نباشه وقت درد سر بشون سرنه. جان سعید چرا بابا به حرف اینا این گربه نرو رو روبای رو مکار مکارا گوش میدی تو بودو بیا بریم تا نرفتم بیرون بگیریمشون ای بابا جدی آره بعد بد نشه هاج آقا بدش نهاره. بیا بابا هاج آقا کی چنده تو نمیشناسی اینا رو بیا بریم اینا رو این نمیدون از دست چیکار؟ ای بابا چاپشی دون دنبالت میگرده چشمای من میدونی عشقت شده تموم دنیای من اما حالا که داریم در مورد اتفاقات زیست محیطی مهم توی سال 2015 صحبت می‌کنیم، جا داره از یک رسوایی زیست محیطی مهم هم یاد کنیم که شرکت آلمانی فولکس واگن زحمت کشیدن و به بار آوردن داستان این بود که خودروهای دیزلی این شرکت که هزاران تا 8 برابر بیشتر از حد مجاز برای ورود به بازار آمریکا آلودگی تولید میکرد با یه چند تا شگرد و دستکاری نرمافزاری و همج یه جورایی ب قول خودمونی شامورتی بازی مهندسی که ماها ازش خیلی سر در نمیاریم، تونستن از مراحل سخت کنترل کیفیت و ارزیابی های انجام گرفته عبور کنن و استاندارد های لازم رو برای ورود به بازار آمریکا بگیرن و فولکس، اینجوری، تونست حدود، 500 هزار خودروی خودشو به آمریکایی‌ها یه جورایی به قول گفتنی یه جورایی غالب کنه دیگه اینه که شما هم فکر نکنین فقط بعضی از های کشور ما بلدن سر دیگران مثلا کلا بذارن گنجیش رنگ رنگ کنن جا قناری بفروشن بله ظاهرا آلمانیام ما این کارا بلدن و میکنن منتها خب دیگه این دفعه انگار شانس نیاوردن دیگه بندگان خدا البته بعد از این رسوایی مدیرعامل این شرکت مجبور شد استعفا بده و احتمالاً همین روزا فولکس چندین برابر سودی که از صادرات خود رو به آمریکا داشته رو باید به عنوان غرامت پرداخت کنه. به هر حال هر کی توی غرب از این خربزه ها میخوره پای میشین میشی. هستن اگه میتونستان اگه میتونستان توی خونه‌شون با ماشین جابجا میشدن یعنی حتی حال راه رفتن از این اتاق به اون اتاق هم ندارن یکیشون همین سرعیه دوست من که انگار چسبیده به صندلی ماشینش به دنیا اومده پیروزا قرار گذاشته بودیم بیاد من رو بردار با هم بریم خرید سوار ماشینش که شدم گفت وا رو ماسک زدی تظاهراته گفتم نه به خاطر هوا گفت مگه هوا چه گفتم تو این هوا رو نفس نکشیدی گفت تو که میدونی من از پارکینگ با ماشین میام بیرون خونه بعدم همینطوری برمیگردم دیگه گفتم اون وقت جایی تو خیابون پیاده نمیشی گفت دیدی که خریدم بخوایم بریم میریم مجتمعی جایی که پارکینگ داشته باشه دیگه گفتم آره حواسم نبود گفت پس این آدما که این چند روز ماسک زدن هیچ ربطی به اعتراض و تظاهرات اینا ندارن گفتم نه خیر ندارن یعنی تو همینجوری از تو ماشینت هم نمی هوا خیلی کثیفه گفت فکر میکردم مه دیگه حالا چرا هوا کسیف شده؟ گفتم به خاطر آدم مثل تو که تا یک قدم شونم که میخوان برن ماشین روشن میکنن همه میدانند، همه میدانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرقن ره ایم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خرشید و هم خیره شدند یه بعضی از آدما ها هرچقدرم که کم عمر کنند چیزی رو به کیفیت دنیایی که توش زندگی میکنیم اضافه میکنه آدمایی که صدای زمزمه هاشون توی گوش تاریخ میپیچه تا به ما یادآوری کنه که میشه به دنیا از منظر دیگه ای نگاه کرد و میشه لابلای روزمرگی ها و مشقله ها گم نشد امروز هشتم دیماه، هشتم دیماه روز تولد فروغ فرخزاد بود فروغ فرخزادی که اگه بود امروز هشتاد ساله بود فروغی که هرچند زود خاموش شد اما شعر و صدا و یادش همیشه برای دوستاراش موندنی و زنده است شبتون خوش و روزگارتون پر فروغ نگاه کن که غم درونه دیدم چگونه قطر قطره آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام استیم خراب می شود. شراری مرا به کا می کشد مرا می میبرد به دا می کشد نگاه تمام آسمان من پر از شهاب می شود پراز. شاب پیشاوا ها منی صدور ها و دور سر زمین اغ و نورها ها نشانه ی ما را قانون زبرها بلور ها مرا ب بعد آمیده نواز من ببر به شهر شعر و شور ها ببر به شهر چهر و شور ها ببر به شهر